شنوندگان عزیز به کلاسی دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. در این جلسه ما ذکریای نبی رو به شما معرفی خواهیم کرد. وقتی که شما در شرایط سخت هستید، بر چه چیزی تمرکز می‌کنین؟ زکریا اهمیت دیدگاه رو به ما نشون میده. بس به اینکه ما مسائل رو چطور می‌بینیم، میتونیم بدنی پر از نور داشته باشیم یا تاریکی. بیاید قلب و فکرمون رو برای دریافت اونچه که خداوند میخواد یاد بگیریم، آماده کنیم. با هم به درس امروز معلممون گوش میدیم. گوش کنید ببینید کتاب زکریا چطور شروع میشه. در ماه هشتم از سال دوم داریوش کلام خداوند بر زکریا نبی نازل شده گفت خداوند بر پدران شما بسیار غذبناک بود. پس به ایشان بگو یهو و سبایوت چنین میگوید به سوی من بازگشت کنید. قول یهوه سبایوت این است و یهوه سبایوت میگوید من به سوی شما رجوع خواهم نمود شما مثل پدران خود مباشید که انبیای سلف ایشان را ندا کرده گفتند یهوه سبایوت چنین میگوید از راههای زشت خود و از اعمال بد خویش بازگشت نمایید اما خداوند میگوید كه ایشان نشنیدن و به من گوش ندادند پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده میمانند لاكن كلام و فرائض من که به بندگان خود انبیا امر فرموده بودم آیا پدران شما را در نگرفت؟ و چون ایشان بازگشت نمودن گفتند چنان که یهو و سبایوت قصد نمود که موافق راهها و اعمال ما به ما عمل نماید همچنان به ما عمل نموده است. حالا به کتاب زکریا دومین نبی از انبیای بعد از اسارت رسیدیم. گفتیم که انبیای بعد از اسارت سه نبی هستند که کتابهایشان در آخر عهد قدیم ثبت شده. این سنابی همگی بعد از اسارت نبوت میکردن و به همین سبب به اونها انبیاء بعد از می میگیریم این سنابی عبارتند از هجی، زکریا و ملاکی این سنابی تقسیم میشن به یک گروه دو نفره و یک نفره حجی و زکریا جز گروه دو نفره هستند و باید کتاب های اونها را با هم دیگه مطالعه کرد چون هر دو در یک زمان زندگی میکردن اونها هر دو در یک دوره معیزه میکردن و هر دو از معیزه هاشون یک هدف داشتند حجای و زکریا با اولین گروه از اسرا تحت نظارت زروبابل و یهوشه به کشور بازگشتند. اونها قرار بود به فرمان کوروش کبیر امپراتور ماد و پارس معبد رو بازسازی کنند. ملاکی حدود یکصد سال از حجای و زکریا فاصله زمانی داره. محققین اعتقاد دارند که ملاکی زمانی معظمی کرده که ده سال از تعمیر و احداث حصارهای شهر اورشلیم توسط نحمیا گذشته بود. باز هم یادآوری میکنم که بازگشت قوم یهودا از اسارت بابل طی سه مرحله صورت گرفته. یک بازگشت تحت نظارت زر و بابل، فرماندار و یهوشک آهان اعظم بود. 79 سال بعد از را دومین گروه از اسرا رو در بازگشت رهبری کرد و مأموریت او این بود که خدمت پویایی در معبدی که توسط اولین گروه از اسرا بازسازی شده بود به راه بندازه. و 13 سال بعد نهمیا نه ها یافت که حساری دور اون معبد و دور شهر اورشلیم بسازه. محققین بر این باورند که ملاکی ده سال بعد از ساخته شدن حسارها به آمد. دلیل محققین این هست که وقتی شما کتابهای نهمیا و ملاکی رو بخونید خواهید دید که هر دو تحت شرایط مشابه نوشته شدهاند. بنابراین محققین به این نتیجه می رسند که از و نهمی هر دو تقریباً در یک زمان زندگی می کردن. اما چون از پس در نتیجه باید خدمت ملاکی ده سال بعد از عزرا و نهمیا بوده باشه. به هر صورت هجی و زکریا 100 سال پیش از ملاکی خدمت می‌کردند. پس ما باید هجی و زکریا رو با هم مطالعه کنیم. اونها از بابل که توسط پارسیان فتح شده بود با اولین گروه از اوسرا به کشورشون بازگشتند. هر دو هدف مشترکی از موعظه هاشون داشتن. هدف موعظه های اونها بازسازی معبد سلیمان بود. این کار خدا در دوره اونها بوده و کار خدا در اون دوره به خاطر آزار و اذیت اقوام کینتوزی که در اون زمان در سرزمین مقدس زندگی میکردن متوقف شد ترس از مردم کینتوز باعث شد که بازگشتگان یهودا کار بازسازی معبد رو به مدت پانزده سال تعطیل کنند بعد حجی و زکریا وارد صحنه شدند هدف حجی و زکریا این بود که کار بازسازی معبد از سر گرفته بشه اگرچه اونها هدفاشون رو به طرق بسیار مختلفی دنبال کردند وقتی این دو رو با هم مطالعه کنیم به شما کمک میکنه که بفهمید حجه خیلی بزرگتر از زکریا بود زکریا در مقایسه با او مرد جوانی بود برای درک ماموریت و خدمت این دو لازمه که به لحاظ تاریخی تمرکزی بر روحیات مردم اون دوره داشته باشید یادتونه که مردم یهودا وقتی آمدن با توده‌ای از آوارها مواجه شدند زندگی اونها هم مثل توده ای از آوارها بود وقتی اونها قصد داشتند از نخاله های بهجامانده از اورشلیم و خانههاییشان مسالی بازیافت کنند شرایط روحی اونها در پایین ترین حد خودش بود همونطور که قبلا گفتم گرچه فرمانی که به موجب اون اسرا میتونستند به کشورشون بازگردن یک مجزه باشکوه بود اما بازگشت اونها واقعی باشکوهی نبود پیام حجی و زکریا پیام امید بود وقتی قوم یهودا بازگشتند که معبدشون رو بازسازی کنند تنها امیدی که اونها داشتند این دو نبی حجی و زکریا بودند. اونها مواظه میکردند که خدا بخت و اقبال اونها را باز خواهد گرداند. خدا با اونهاست و بنابراین اونها آیندهایی خواهند داشت. قوم یهودا به جز پیامی که از این دو نبی میشنیدند هیچ امیدی نداشتند. اگه خودتون رو جای اونها قرار بدید خواهید فهمید که آینده اونها روشن نبود. اونها واقعا هیچ چیزی پیش رو نداشتند که به پشتوانه اون کار بازسازی معبد رو شروع کنن. حجی اهل عمل بود. حجی به اونها میگفت بر اولویتاتون تمرکز کنید، خدا رو در صدر قرار بدید، خانه خدا رو در اولویت قرار بدید، کار خدا رو در اولویت قرار بدید و قویدل باشید و بنا کنید. کار رو تمام کنید. این روش موعظه حجی بود. او واعظی پرشور و اهل عمل بود. امروزه ما در فرهنگمون به او یک واعظ عملگرا میگیم. کلمه عملگرا به معنی اهل عمل هست. فلسفه عملگرایی فلسفه یه که فقط علاقمند کاره. از این نظر شما میتونید به هجه عملگرا بگید. هجای دقیقا اینو میگفت. کار رو تموم کنید. و مردم به معزه عملگرایانه او پاسخ میدادند. اونها معبد رو بازسازی کردند. زکریا هم از معزه هاش همین هدف رو داشت. اما معزه او بسیار متفاوت از های حججی بود فرم ادبی این کتاب‌های نبوتی زیبایی خاصی داره مثلا همونطور که وقتی هبقوق رو بررسی می‌کردیم دیدیم که فرم ادبی منحصر به فرد بود حبقوق موعظه‌اش رو به صورت یک مناظره عنوان می‌کرد که در اون هبقوق میزبان و خدا میهمان بود وقتی به آخرین نبی یا ملاکی برسیم خواهیم دید که ملاکی هم یک فرم زیبای منحصر به فرد ادبی خاص خودش رو داشته رو کرده این بود. قوی دل باشید و بسازید. حالا زکریا هم میخواست که معبد ساخته بشه. اما زکریا دیدگاه دیگه ای داشت. او گفت کلید قوی شدن، کلید قدرت رویا هست. این چیزی که مردم را قوی میکنه. سلیمان گفته بود جایی که رویاه نباشه قوم حلاک میشن. منظور سلیمان از این چی بود؟ منظور سلیمان این بود. اگر مردم خدای نادیده رو نبینند و اگر رویایی از خدا نداشته باشند که حضور داره و این خدایی که حضور داره چیکار میتونه بکنه و چه فرقی میتونه به وجود بیاره اگر این رویا رو نداشته باشند اونها قوی نخواهند شد ناامید خواهند شد تسلیم افسردگی و ناامیدی هاشون خواهند شد و هیچ کاری رو به پایان نخواهند برد این دو نبی با همدیگر دیگر به خوبی کار میکردند چون حجی عملگرا بود و موعظه میکرد قوی باشید و کار کنید و اعتراض میکرد، اما اونها تا زمانی که خدا رو نبینن قوی نخواهند شد و کار خدا رو انجام نخواهند داد. چیزی که اونها واقعا نیاز دارن یک رویا از خداست. وقتی مردم از یک فاجعه عبور میکنن و, می و ناامید هستند تنها چیزی که میتونن ببینن مشکلاتشونه. اگر الان مشکلات رو تجربه میکنید، لازمه که بدونید مردم اطراف شما هم مشکل دارن. اگه ما وقت داشته باشیم و دور هم جمع بشیم و مشکلاتمون رو برای هم بازگو کنیم، تعجب خواهید کرد که بدونید تمامی کسانی که سمت چپ و راست شما هستند همین الان دو تا شاید داستان اون افسر پلیس رو شنیده باشید که ازش خواسته شد به بالای برج بلندی بره چون مردی قصد داشت از اون بالا بپره وقتی پلیس به بالای برج رسید و با مردی که قصد خودکشی داشت شروع به صحبت کرد اونها به یک توافق رسیدن. مرد گفت من به تو پنج دلیل میگم که باید بپرم و تو پنج دلیل برای من بیار که نباید بپرم پلیس گفت به نظر منطقی میرسه بعد افسر پلیس برای مرد پنج دلیل آورد که نباید بپره بعد مردی که خود خودکشی کنه پنج دلیل برای پلیس عنوان کرد که باید بپره و بعد پلیس هم تصمیم گرفت با او بپره و هر دو با هم پریدن به این دلیل شاید اگر شما با اطرافیان خودتون جمع بشید و مشکلاتتون رو با هم میون بذارید شاید همگی با هم بپرید شاید دانستن مشکلاتی که مردم با اونها مواجه هستند مایوس کننده باشه پیام زکریا خطاب به کسانی در این دنیا هست که در صدد پریدن هستند. وقتی کسی با مشکلی مواجه میشه تنها چیزی که میتونه ببینه شرایط بار هست وقتی از یک مصیبت در خانوادهتون آگاه باشید اگر به شما گفته بشه که یک کودک کشته شده و یا بیماری خطرناکی دارید اون موقع هست که حقیقتاً به رویا نیاز دارید شما به رویایی از خدا نیاز دارید لازمه که چیزهای رو ببینید. هبقوخ. شما هم لازم برج دیدبانی خودتون رو بسازید به بالای اون برج روحانی برید و منتظر باشید تا خدا به شما نشون بده که چطور در زندگی شما توسط همون فاجعه کار میکنه. لازمه که به صدای خدا که با شما صحبت میکنه گوش کنید که چطور میخواد در زندگی شما توسط همون شرایط فاجعه کار کنه وقتی به کسی که مصیبتی رو تجربه میکنه مشورت میدید معمولا اونها چیزی جز شرایط مصیبت بارشون در این بره از تاریخ قوم خدا شرایط مصیبت باری رو تجربه میکنن. سعی کنید بر دیدگاه های تاریخی متمرکز بشید. دیدگاهی تاریخی داشته باشید و بدونید قوم یهودا با چه چیزی مواجه بودند. به یاد بیارید که اونها از کجا آمده بودند. اونها هفتاد سال در اسارت بودند. بعضی‌هاشون هیچ چیزی جز اسارت بعضی بعضی‌هاشون آزادی و اسارت رو مشناختند می اما میدونستند که خیلی پیر هستند. بعضی از اونها شاید عزیزانی داشتند که در موقع سقوط اورشلیم کشته شده بودند. و بعد به مدت هفتاد سال با اونها مثل برده ها رفتار شده بود. روحیه اونها در هم شکسته شده بود. تنها دلیلی که بعضی از اونها برای بازگشت داشتن و میخواستن معبدشون رو بنا کنن به خاطر گشاده دستی یک پادشاه غیر یهودی بود. این میتونست برای یک یهودی مذهبی و دیندار شرایط بسیار سختی باشه. وقتی شما در شرایط سختی هستید چی میبینید؟ این سؤال بزرگی بود که خدا توسط انبیا میپرسید. اونها به خاطر نحوه پاسخی که به سوال خدا میدادند، به دیدبانان معروف بودند بارها ما شنیدیم که خدا از یکی از این انبیا میپرسه الیشع چی می‌بینی حزقیال چی می‌بینی آموس چی می‌بینی عیسی گفت شما میتونید بدنی پر از نور داشته باشید یا بدنی پر از تاریکی بستگی به این داره که چه پاسخی به اون سوال بدید عیسی گفت چشمها چراغ بدن هستند منظور او این بود که چگونه می‌بینی دیدگاه شما چیه؟ افکار شما چیه؟ چشمنداز شما چیه؟ رویاهای شما چیه؟ حالا بسته به اینکه که شما چیزها رو چطور می‌بینید، میتونید بدنی پر از نور داشته باشید و مهم نیست که چه شرایطی داشته باشید یا میتونید بدنی پر از تاریکی داشته باشید و مهم نیست که شرایط زندگی شما چیه. زندگی شما میتونه پر از تاریکی باشه و یا میتونید از خدا بخواید که زندگی شما رو پر از روشنایی بکنه. به این بستگی داره که شما چیزها رو چطور میبینید در این بره از تاریخ مردم نیاز داشتند که چیز خوبی بشنوند اونها به نبی نیاز داشتند که بتونه خدا رو ببینه و بتونه چیزی رو ببینه که بیشتر مردم وقتی در شرایط مصیبت بار هستن نمیتونن ببینن و بعد چیزی رو که می به مردم بگه قوم خدا به نبی نیاز داشتند که از خدا رویا داشته باشه و بتونه اون رویا رو به اونها انتقال بده ما باید انبیا رو از این دیدگاه نگاه کنیم این انبیا فقط مجازات و ظلمت و آتش و سلفور رو مععظه نمیکردند اگرچه گاهی اونطور به نظر میرسند ولی وقتی کتابهای نبوتی کتاب مقدس رو میخونید گاهی فکر می میکنید که اون نامید کننده هست چون همش وای و وای و وای و مجازات و تاریکی هست اما وقتی واقعا انبیا رو بشناسید اونها در واقع مجازات و تاریکی رو نمی نمیکنند اونها امید رو می میکنند چون اونها وقتی هیچکس ای نمیتونه خدا رو ببینه خدا رو می‌بینن وقتی اونها می‌بینن خدا حتی در این شرایط مصیبت بار زندگی اونها داره کار میکنه به مردم میگن که چی دیدن و این به مردم امید میده در این مرحله خاص از تاریخ این تنها امیدی بود که قوم یهودا داشتن این قوم به نبی نیاز داشتن که بتونه خدا رو ببینه و بعد چیزی رو که دیده به اونها بگه خدا به این دلیل زکریا رو به اونها داد این روش و روی کرده زکریا بود کاربرد عملی این چیه آیا امید دارید آیا به نظر میرسه او زانا مساعد هست؟ خب دیدگاه ابدی خدا رو در زندگیتون ملاحظه کنید. او اومد که ما بتونیم امید و شادی واقعی که کامل هست داشته باشیم. زکریا نام معروف و شناخته شده ای بود. 29 نفر در کتاب مقدس با همین نام شناخته شده تنها چیزی که این زکریا را از دیگران مجزا میکنه نام پدر او هست که به این صورت آمده. زکریا پسر برکیا پسر ادو دلیلی که او به عنوان پسر دو نفر ذکر شده اینه که وقتی زکریا کوچک بوده پدرش برکیا مرده و احتمالا او در طی اسارت و یا موقع رفتن به اسیری مرده و پدر بزرگ او عدو زکریا رو بزرگ کرده به همین دلیل او پسر عدو هم خانده شده وقتی که شما به نام های که کتاب زکریا نبی با اون شروع شده نگاه کنید باید بدونید که معنی نام زکریا این بود که یهوه به یاد میآورد برکیا معنیش این بود که یهوه برکت میدهد و عدو معنیش این بود که در زمان خودش یا در زمان مقرر خودش. پس وقتی شما معنی این سنام یهودی رو بدونید که کتاب زکریا با اون شروع شده، بلافاصله بعد از اون میتونید پیام زکریا رو درد کنید. اسامی یهودی به ما داستانهایی رو میگن. در آیه اول از باب یک زکریا این اسامی به ما میگن که یهوه در زمان مقرر خودش به یاد میاره و میده. این دسته کم میتونه بخشی از پیام زیبای زکریا باشه زکریا به این قوم خواهد گفت خدا شما رو به یاد میاره خدا تصمیم گرفته که شما رو به مسیر پدر ما ابراهیم برگردونه و ببینید چند بار او شما رو به یاد آورده حتی زمانی که شما فراموش کردید که قوم برگزیده او هستی او به طرز معجزه آساب و خارق العاده شما را از مصر نجات داد او تمامی اون معجزات از جمله ده بلا و شکوفه شدن دریای سرخو تدارو که معجزه آسا در بیابان را انجام داد. او هنوز هم شما را به یاد میاره چون شما قوم برگزیده او هستید. او به شما برکت خواهد داد. او در زمان مقرر خودش به شما برکت خواهد داد. این پیام ابتدای کتاب زکریاس که در این سه اسم نهفته است. پیامی که خدا توسط زکریای نبی به ما میده اساسا اینه. به سوی من باز گردید و من به سوی شما باز خواهم گشت. قوم یهود قبلا بازگشت جغرافیایی به سرزمین مقدس رو تجربه کرده بودند اما این بازگشت روحانی به خدا نبود همونطور که بارها گفتم حالا در بررسی انبیا امروز ما تحقق یک نبوت رو در بازگشت قوم یهود به سرزمین مقدس میبینیم. انبیا پراکندگی قوم یهود در سراسر دنیا رو نبوت کردند و بعد بازگشت این قوم رو به سرزمین مقدس پیشگویی کردند ما این بازگشت جغرافیایی رو در نسل خودمون دیدیم این هیجان چون تحقق یک نبوت هست. اما انبیا گفتند که چیزی فراتر از بازگشت جغرافیایی قوم خدا به سرزمینشون وجود داره انبیا میگن بازگشت روحانی قوم خدا به سوی خدایشان نیز خواهد بود زکریا نبییه که این رو به ما میگه و بر اون بسیار تاکید داره پیام مؤكد خدا توسط زکریا اینه یهوه سبایوت چنین میگوید به سوی من بازگشت کن قول یهوه سبایوت این است و یهوه سبایوت می گوید من به سوی شما رجوع خواهم نمود. یک عبارت اینجا هست که 53 بار در باب 14 زکریا بیان شده. یهوه سبایوت سه بار در آیه سه تکرار شده. خدای لشکرها یهوه سبایوت است. این بیان زیبایی هست که ما رو به محتوای پیام بعدی زکریا هدایت میکنه باز هم یادتون باشه که در این زمان قوم یهودا به لحاظ نظامی و سیاسی ضعیف هستند تمامی قدرت سیاسی اونها از بین رفته اونها هیچ ارتش و سلاحی در اختیار ندارند اونها تا حد مرگ ترسیدن. مغلوب شدند و به مدت 70 سال اسیر بودند اونها احساس میکنند در خطر و بی‌دفاع هستند و احساس ناامنی میکنند تنها فکری که ذهن اونها رو به خود مشغول کرده اینه ما چطور از خودمون حفاظت خواهیم کرد پاسخ زکریا به اون سوال که سه بار تکرار میکنه اینه یهو و سبایوت این نشون میده که خدای اونها خدایی با قدرت لایتناهیه خدا میتونه فرمان بده میتونه ستارگان و طبیعت و تمامی نیروها و قدرت ها رو به خدمت بگیره و اراده اش رو عملی کنه پس شما به ارتش نیاز ندارید خدای لشکرها میتونه از شما حفاظت کنه ما تمثیل زیبایی از این رو در کتابهای تاریخی داریم این واقعه در زندگی علیشه رو به یاد پادشاه آشور ارتش بزرگ عرابه ها و عصب ها رو برای محاصل شهر فرستاد وقتی خادم نبی صبح روز بعد بیدار شد و بیرون رفت، همه جا پر بود از گروه سربازان عرابه ها و عصب و او به اربابش میگه حالا باید چیکار کنیم. او نزد الیشا گریه میکرد. الیشا با او گفت نترس. زیرا ارتش ما بزرگتر از ارتش آنهاست. الیشا دعا کرد و خداوند چشمان او رو باز کرد. خداوند چشمان مرد جوان رو گشود و او عصب ها و عرابه آتشین رو همه جا بر فراز کوها دید. این معنی خدای لشکرها یا یهوه و سبایوت هست. اگر شما رویایی از خدای لشکرها داشته باشید و بر او تمرکز کنید، خواهید دید که او یهوه و سبایوت هست. او الشدای هست. او کسیه که برای هر چیزی کفایت میکنه. او قدرت لایتناهی داره و میتونه تمامی نیروها رو به خدمت بگیره. و از شما حفاظت کنه و هدفش رو در زندگی شما به انجام برسونه. این مهمترین بخش از پیام زکریا هست. حالا به پیام زکریا می‌پردازیم. زکریا در این پیام اساسی مفصلا شرح می‌ده که به سوی من بازگشت کنید و میگه قول یهوه سبایوت این است. و یهوه سبایوت میگوید من به سوی شما رجوع خواهم نمود. وقتی این رو می‌خونید ملاحظه کنید که زکریا به اونها میگه راه است که خدا این امکان رو فراهم میکنه که بتونید به سوی او بازگردید تا او بتونه به سوی شما بازگرده این به نظر شبیه آیه کتاب یعقوب میاد که میگه به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد زکریا بارها اینو میگه اولا خدا با نشان دادن ارادش به شما این امکان رو فراهم میکنه توجه کنید که هر از گاهی زکریا به ما میگه که خدا با قومش صحبت میکنه خدا کلامش رو به قومش میده اگر بخواهید راه بازگشت به سوی خدا رو پیدا کنید و اراده خدا رو در زندگیتون بدونید، میدونید بهترین جا برای شروع کجاست؟ دقیقا از کتاب مقدس، از کلام خدا شروع کنید. ایمان از شنیدن کلام خدا میاد. با کلام خدا شروع کنید چون کلام خدا اراده خدا رو به شما نشون خواهد داد. کتاب مقدس فکر خدا رو به شما نشون خواهد داد. اون راهی رو به شما نشون خواهد داد که خدا میخواد شما در اون راه گام بردارید. کلام خدا چراغی برای پاهای شما و نوری برای راه شما هست. کلام خدا راه بازگشت به سوی خدا رو به شما نشون خواهد داد. زکریا این رو کاملا روشن بیان کرده. دومین راهی که زکریا میگه به سوی خدا بازگردیم تا خدا بتونه به سوی ما بازگرده، توسط آمدن مسیح است. حالا به جز اشعیا، زکریا بیش از هر نبی دیگری نبی مسیحایی است. اشعیا همونطور که گفتیم بیش از هر نبی دیگری نبوت مسیحایی داره. اما بعد از او زکریا بیشترین نبوتای مسیحایی رو داره. زکریا بیش از مجموع تمامی انبیاء کوچک نبوت مسیحایی داره زکریا در مورد آمدن مسیح با ما صحبت میکنه و اینطور میگه به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما رجوع خواهم کرد من راهی برای بازگشت شما فراهم خواهم کرد راهی که شما به سوی من باز خواهید گشت راهی که شما به سوی من باز خواهید گشت آمدن عیسی مسیح خواهد بود وقتی مسیح بیاد او چی میگه مسیح میگه من راه هستم من راه به سوی پدر هستم و هیچ کس جز به واسطه من نمیتونه نزد پدر بیاد یهودیانی که شنیدند عیسی در بالاخانه اینو میگه نوشته‌های انبیا رو میدونستند اونها نبوت‌های زکریا نبی رو میدونستند اونها میدونستند چیزی که عیسی میگه همون چیزی بود که زکریا گفته بود به سوی من بازگردید و من به سوی شما باز خواهم گشت و راه رو نشونتون خواهم داد وقتی مسیح بیاد او راهی خواهد بود برای بازگشت شما به سوی من چیزی که عیسی در یوحنا چهارده میگفت این بود به خدا ایمان داشته باشید؟ به من نیزیمان داشته باشید چون که من راه هستم. من راه بازگشت به سوی خدا هستم. این دومین روشیه که زکریا به ما میگه که میتونیم به سوی خدا بازگردیم تا خدا بتونه به سوی ما بازگرده. سومین راهی که زکریا میگه ما میتونیم به سوی خدا بازگردیم تا خدا بتونه به سوی ما بازگرده به وسیله ی روح القدسه. یادتونه که گفتیم قوم یهودا ارتشی نداشتن. اونها نیروی نظامی قدرتمندی نداشتند و نمیتونستند از خودشون دفاع کنند و این چیزی بود که اونها رو نگران میکرد وقتی اونها میخواستند بپرسند که چطور از خودشون محافظت کنند زکریا چیز بسیار زیبایی به اونها میگه نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من قول یهوه سبایوت این است شما میتونید به سوی من بازگردید و من به سوی شما باز خواهم گشت میتونید به وسیله کلام من به سوی من بازگردید میتونید توسط مسیح به سوی من بازگردید و میتونید توسط روح القدس به سوی من بازگردید. این پیشگویی زکریا از پنتیکاس بود. پیشگویی زکریا به اندازه پیشگوی یویل در مورد پنتیکاس دقیق نبود. اما زکریا پنتیکاس رو نبوت میکنه. زکریا از آمدن پسر و آمدن روح صحبت میکنه وقتی که میگه نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من قول یهوه و سبایوت این است او در واقع پنتیکاس رو نبوت میکنه. وقتی نبوت زکریا رو میخونید این رو ملاحظه کنید زکریا تسلیس رو پیشگویی میکنه شما میبینید که زکریا میگه خدای پدر کلامش رو به ما میده بعد خدا پسرش رو به ما میده زکریا پسر رو شاخه میخونه شاخه راهی خواهد بود برای بازگشت به سوی خدای پدر بعد خدا به سوی قوم یهودا به صورت روح القدس باز میگرده در این سرایش زکریا به ما نشون میده این امکان هست که از پیام خدا اطاعت کنیم که میگه به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما باز خواهم گشت. حالا میخوایم فرم زیبای ادبی زکریا رو بررسی کنیم. بررسی فرم زیبای ادبی کتاب زکریا قلب پیام زکریا رو به ما نشون میده. هشت بار در شش باب اول از کتاب نبوتیش زکریا به قوم خدا یک رویایی میده که به اونها رویایی مکاشفاتی میگیم. کلمه اپوکالیپس کلمه یونانیه که مکاشفه ترجمه شده. اپوکالیپس یعنی کنار زدن پرده و دیدن چیزی که پشت آن هست. بدون کنار زدن پرده نمیشه اون را دید. اگر خدا پرده رو کنار نزنه شما هرگز نمیتونید بدونید پشت پرده چیه. این کاریه که زکریا هشت بار در شش به با اول نبوتش انجام میده. زکریا بر یک مشکل آشکار تمرکز میکنه، مشکلی که باعث شده بود قوم یهوداتا به حد مرگ بترسن، مشکلی که برای قوم خدا دلسردی، افسردگی و ناامیدی به همراه داشت، وقتی زکریا بر مشکلی که حقیقتاً اونها رو زمینگیر کرده بود تمرکز میکنه او میره که پرده رو کنار بزنه و میگه خب بذارید نشونتون بدم که خدای لشکرها چه نیروی رو به خدمت فرا خونده و تحت امرش گرفته تا اینکه بتونه مشکل شما رو حل کنه زکریا این مرحله رو 8 بار در شش باب اول کتابش عنوان میکنه روش زکریا این بود که مشکل رو در مقابل اون پرده بذاره و بعد پرده رو کنار بزنه تا به قوم یهودا نشون بده که خدا بزرگتر از مشکلات اونها فرم ادبی کتاب زکریا نشون میده که روش زکریا با حجی فرق میکنه. حجی میگفت می, می قوی دل باشید و کار کنید. توسط روح القدس خدا به زکریا نشون داد. و من یقین دارم که احتمالا او به نبی قبل از خودش گفته بود حجی رمز قدرت رویا هست. اگر رویا نباشه مردم حلاک خواهند شد. چیزی که اونها حقیقتا نیاز دارن یک رویاست. اونها باید نادیده ها رو ببینن چیزهای آشکار مشکلات و شرایط اونها رو وحشت زده کرده، افسرده و دلسرد و ناامید کرده. اونها به یک رؤیا از خدای نادیده نیاز دارند که میتونه بر مشکلات رو اونها قلبه کنه. وقتی بحث جدید برسیم و رسالات پولس رو بررسی کنیم، با مردی ملاقات خواهیم کرد که میدونست شرایط سخت چیه. پولس هم همینطور رمز رویای زکریا رو میدونست. پولس میدونست که وقتی در شرایط سخت هستید، تنها چیزی که نیاز دارید دیدن چیزهای نادیدنیه. نیاز دارید که رویای آسمانی را رو ببینید لازمه که شما صداهای آسمانی را بشنوید که کسان دیگهای نمیتونند ببینند و بشنوند پولس اون را اینطور بیان میکنه بنابراین امید خود را از دست نمی نمیدهیم اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازهتر میگردد و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بیپایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم میکند و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم نه به چیزهای دیدنی. زیرا آنچه به می آید موقتی است ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارن. می میبینید پولس در دوم قرنتیان چی میگه؟ او میگه که کلید قدرت رویا هست. اگر میخواهید در این رویای مرعی قوی باشید باید یاد بگیرید که چیزهای نامرعی رو ببینید. لازمه که خدای نادیده رو ببینید. جی کامبل مورگان یکی از محققین کتاب مقدس مورد علاقه من هست این روش زکریا رو در تفسیرش از زکریا به این صورت خلاصه کرده او میگه نشانه رویا قدرت هست شما میگید اینها روزهای تاریک هستند و اونها هستند اما بیایید فقط به چیزهای دیدنی اکتفا نکنید بلکه چیزهای نادیدنی رو هم ببینیم نادیدنی ها رو ببینید رمز قدرت رویا هست اما نشان رویا قدرت هست اگر مردم بگن که اونها این چیزها رو میبینن و به این چیزها ایمان دارن با این حال کار نکنن من به چیزی که اونها میگن نمیتونم باور کنم. نظر اونها یه نظر آریایی هست. اونها به یک تصویر نگاه میکنن نه به یک حقیقت زنده. اما کسی که چیزهای نادیده رو میبینه، کسیه که به اون صحنه چنگ میزنه و اون رو تحت کنترل در میاره. کسیه که آگاه هست در تمامی لحظات وحشتناک شکست بلا فاصله حضور فراگیر قدرت خدا رو حس میکنه. او کسیه که به نزدیکترین تجربیات شکستش نگاه میکنه و در اونها تعمل میکنه تا زمانی که حقیقت حضور خدا مثل یک گل روز براش باز بشه. نشان رویا قدرتی هست که توسط اون انسان میتونه در لحظات سخت طاقت بیاره. ببینید این کاریه که زکریا کرد. این قوم در تنگنای بسیار سختی بودن. تنها چیزی که میتونستند ببینن مشکل بود. وقتی ششباب اول کتاب زکریا رو میخونید توجه کنید که هر کدوم از این هشت رویاه زکریا بر چیزهای دیدنی یا مشکل تمرکز میکنه. بعد پرده رو کنار میزنه و میگه اما خدا رو ببینید. درست مثل برچهای روحانی حبقو. میگه ببینید خدا داره اینجا کار میکنه. نه تنها به عنوان خدای لشکرها برای ما تدارک میبینه بلکه او خدایی که بر تمامی قدرتها احاطه داره و قدرت داره که مشکلات رو حل کنه. و برای رشد شما در این دوره از زندگی شما کار کنه هشت بار زکریا این نورویا ها رو عنوان میکنه به این دلیل به زکریا نبی رویابین نبی مکاشفاتی و نبی نادیده ها هم گفتن. زکریا دید که خدا به سه روش مختلف به جای قومش کار میکنه با گفتن و بیان کردن اراده و دعوت از آنها برای بازگشت به سوی او و پیش بینی کردن و یادآوری آمدن مسیح که در این کتاب به عنوان شاخه و خادم آمده و در بعد سوم وعده می و میگه وقتی به سوی من بازگشت کنید قول یهوه سبایوت این است من به سوی شما باز خواهم گشت من به سوی شما باز خواهم گشت و خداوند میگه نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح اگر شما از خدا دور هستید و یا هرگز به او نزدیک نبوده اید به سوی خداوند بیایید و از او بخواهید ارادش را رو به شما نشون بده خدا هنوز هم یهوه سبایوت است و میخواد در زندگی من و شما کار کنه. عزیزان، متشکریم که در دانشکده کوچک کتاب مقدس دانش وفاداری بودین. اما میخوام ازتون بپرسم آیا امیدوار هستین؟ یا به نظر میرسه که همه چی داره به وخامت میره؟ خب، این بسیار آرامش بخشه که بدونیم خدا ما رو دوست داره و نقشه برای زندگی من و شما داره. ما به دیدگاه ابدی اون برای زندگی هامون نیاز داریم. اون اومد که ما بتونیم امید و شادی حقیقی داشته باشیم. دعای ما اینه که این درس ها شما رو در ایمانتون رشد بدن تا اینکه شادی شما کامل بشه و امید او شما رو حفظ کنه. تا برنامه بعدی امیدواریم که بر خداوند خدای قادر مطلق تمرکز کنید.